بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ما بعد أبو سحاق البري رحمه الله واسكنه فسيح جنات ميقوياد. لأن جلس الغني على الحشاية انت على الكواكب قد جلست لأن جلس الغني سرفت من اجار روية اندوشك مجلس راحتی در این دنیا داشته باشه روی مبل بشینه روی مبلی بشینه لانت علالکواکی بیقدر جلسته ای طالب علم جای تو بر روی ستارگانه علالکواکی بیقدر جلسته منظور از الان تشبیهش به ستارگان منظورش بر علم و معرفت بر اون تخت علم و معرفت و شناخت الله جل و و شناخت دینش نشستی جای تو جایی هست که یوسف علیه الصلاه السلام در اون مملکت پادشاهی مصر بود جای علمه پادشاه محتاج عالمه یوسف محتاج پادشاه نبود پادشاه محتاج یوسف بود برای یوسف فرقی نمی کنه فرعون یا پادشاه دیگه غیر از فرعون یا هر کسی می باشه هر که پادشاه زمان یوسف فرعون نبود کسی دیگه بود فرعونیان زمان موسی بودن برای دعوتگر فرقی نمی کنه حاکمش کی باشه بهترین خلقش را در زمان بدترین پادشاهان قرار داد ابراهیم کی بود پادشاه زمانش نمرود موسی فرعون فرقی میکنه برای پیغمبر یا برای الله کی پادشاه باشه اگر ملک دنیا اگر مال دنیا برای الله مهم بود از اون ملک نصیب این پادشاهان ظالم میکرد نه برای الله ارزش نداره بذار پادشاه ادمرود باشه بذار پادشاه فرعون هم باشه اگه قرار بود که پیغمبران هم مثل اونها پولدار و ثروتمند و پادشاه بودن که دیگه امتحان معنا نداشت همه میشدن جیره‌خورد جیره‌خوری کاره سختی نیست جیری خور کردن، بین بی رشوه دادن، به اون پول دادن، بین بی باج دادن، بین بی پست و منصب دادن اینقدر آدمای های چابلوس هستن، اینقدر مردمانی پیدا میشن که به خاطر دنیا دینشون بفروشن که حد حساب نداره از عیمه جمعه و جماعت گرفته، از اون عالم نما و لباس علم پوشیده، همه نوعش هست از تاجرش هست، از قاچاکچیش هست دینه الدینه به عرض من دنیا قلیل بخاطر اندک مالی دینش رو میفروشه حاضر دروغ بگه خاطر حفظ منصبش حاضر دینش رو بفروشه خاطر کسب مال خاطر تجارتش از های قیامته که مال اونقدر عزیز میشه که انسان حاضر به دینش لگد مال بگونه حفظ جاه و منصب براش مهمتر از حفظ دینش ولی عالم نه عالم براش نه منصب مهمه و نه مال مهمه نه از زندانش میترسه نه از اون داری که بهش آویخته بشه اون عالم حقیقیه میگه اگر زندان بشم یوسف هم که پیغمبر خدا بوده زندان شده خب که چی؟ الان یه تماسی فقط بیاد شماره خاص بنیمیسی روی تلفن بعضی ها شل شل عرق میریزن آلا ما رو میخوانه آلا شاید زندانم بکنه آلا نمیدونم شاید فلانم بکنن برادر دینت برای دین جان دادن لیاقت میخواد برای دین جان دادن لیاقت میخواد می ترسی از اینکه این لیاقت رو پیدا بکنی نمیخوای این لیاقت نصیبت بشه عمر بن خطاب رضی الله عنه آرزوی این لیاقت رو داشت بار الله شهید بشن شهادت را از الله می خواست. چرا چون میدون اگر شهید بشه کشته بشه در راه دین از فتنه قبر در امانه از عذاب قبر میترسی از عذاب قبر میترسی بار الله شهادت را نصیبم کو این لیاقت هم نصیبش شد به دست ابو اللؤي ماجوسي کشته شد شهید شد شهادت لیاقت میخواد شهادت لیاقت میخواد آزار و اذیت به خاطر دین الله جل و علا لیاقت میخواد اشرف خلق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ازیاد اذیت مگه نشد مگر از مکه بیرونش نکردن مگر با سنگش نزدن مگر طائف نرفت بیرونش نکردن نزدن کوتک مگه نخورد مگر نیزه بر فرق سرش وارد نشد لیاقت میخواد تو بی لیاقتی تو بی تحملی تو بی ارزشی نا قيمتي نبهي هيچ أرزشي نز الله جل وعلا نادري صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم زماني كي ومدن نزش در مكة قفت يا رسول الله درهم عذاب ببينيم نرحت مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارمودا بأصحابي يا رانيش والله إنا الرجل من من كان قبله كان يؤتى فيوضع المنشار من المفاقر رأسه فينشر نصفين چی دارید مینالید قسم یاد میکنه و رسول الله صلی الله علیه و میگه والله از امتای گذشته چینین عذاب میشدن که ارمی اوردن نصفشون میکردن از فرق سرشون به خاطر دینشون ابتلا میشدن فتنه میشدن یک تلفن شل داره عرق میریزی خودتو باختی کجا برم به کی بگم چی بگم چی نگم چیکار کردیم آقا بگم میگم مرتکب شدی یا تو کف علم سبب میشه که تو اینجا خودتو نبازی سرت بلند باشه مثل رسول الله صلی الله بذار بیرونت بکنن ولی سرت بلنده فرشته میاد میگه فرشته کوها یا رسول الله تو دستور بده اخشبن رو به هم بیزنم بگه نه بذار عذیت کردن کردم بذار هر کاری کردم شاید از نسلشو کسی بیاد الله را بپرسته جاهله علم اینچنین تو را برستارگان مینشونه لأنت علالکواکی بیقد جلسته با علمت اینچنین دیدت با وسط و بلند میشه رسول الله صلی علیه این چینین با دید وسیعی نگاه میکنه علم نشر حلق صدر رو اینجا میبینی آزارش دادن ولی خیر خواهشون هست. ای فرشته عذابشون نه. سربلندیه این حزته. دنبال انتقام نبود. ولی ماها چی؟ دنبال انتقام، اگر کسی بهتون بدی کرد حالا ببینم چه ماشینشو خرد کنم. حالا نگاه کن تو مجلس آبروشو نبرم، فلان نکنم، فلان. می کینه و کودرت و بغض و اینا این امراض نفسی از کجا میاد؟ حسادت. از چی میاد؟ از جهل ولی علم شو میده این قلب ناپاک و کثیف را این قلب و نفس اماره را شو میده پاکش میکنه زلالش میکنه براقش میکنه بدونی که غل غشی کینه و کدورتی بغض حسادتی توش باشه ماها خون من از حسادت جوش میزنه فلانی فلان ماشین خرید فلان کار رو کرده ها پس منم برم فلان کار رو بکنم چرا من نکنم چه در امر تجارت چه در امر ساخته ساز، ازدواج؟ فلانی زن دوم گرفته چرا اون بگیره من نگیرم چطور اون گرفته من نتونم بگیرم خونش میجوشه از حسادت ترده ها مرضه. تنها راه درمانش علم. جز با علم دنبال درمانش نشو. جز با علم دنبال درمانش نرو هیچ چیزی درمانش نمیده و بدون این نفس اماره در همه ما هست نگو که من حسادت تو دلم نیست. بغز کینه و کدرت دللم نمیده و نیست نگو خودتو بری ندون کن به تخسیری دیگه از درسایی که اینجا ابوسخاخ البیری بهمون میده مغرور نباش متکبر نباش خودتو بی‌نیاس از علم ندون تو نیازمند علمی منو تو نیاز من و تو نیازمند علمی که نفسمون رو با اون درمان بدیم از اون امراضی که ما بهش مبتلا هستیم از از شیطانی از بغز کینه و کدرت و از حسادت و دیگر امراض و ان راکب الجیاد لان تم مناهج التقوى ركبت ام قايسهي كه داره ميکنه البيري بين علم و مال وين ركبه الجياد اگر اون صاحب مال ثروتمند سوار اسب هاي علامت دار بشه اسب هاي براغ اسب هاي نشونه زدن از اون قيمت و بهايي كه داره اون شخصي كه صاحبش هست علامتي براش گذاشته داغي گذاشته كه بدون اين مال فلانيه و ان ركب الجياد مسوومات جیاد اسفاه است مسوومات علامت دار است اگر اون سرفتمند سوار اون چنان اسفاه بشه لانت تو طالب علم مناهج التقوى رکبت تو سوار بر چی هستی؟ اون سوارهایی که از تقوه هستند و تو را به تقوه میرسونند لانت مناهج تقوه مناهج تقوه علمه که تو را به تقوه میرسوند تو سواره بر اونید تو با اون علم پرواز میکنید نهی که اگر اون ثروتمند سواره بر اسب بر روی زمین میره تو بر افق درجه به درجه پرواز میکنی یرفع الله الذين و منكم الذين اوتوا العلم درجات اگر اون افقی بر روی زمین بره تو حمودی به بالا میری علم تو را به بالا میبره علم تو برتری میده الله اهل علم را در رتبه ملائکه گذاشت شهد الله انه لا اله الا هو الملائک و العلم قائما بالقسط گواه بحق حق علمار الله جل وعلا جدار جا در رده گواه فرشتگاه میذاره احل علم گواهشون بر الله حق بر دین الله حق قدر دین الله رو دونستن که از عمرشون از وقتشون به دین الله دادن احل علم میدونن قدر عرضش امایه گرمبه های علم وقتشون رو میدن جانشون بقاطر علم میدن چون میدونن این علم انا رو به الله نزیک میکنه شرف میده به مومد انسان رو نزد الله عزیز میکنه کافیه که زمانی که مؤمن, مؤمن متقی پرهیزگان، صالح از دنیا میره روحش با آسانی کنده میشه یک طرف فرشتگان بهشتی کفنش میکنن با کفنی از بهش یه طرف درهای آسمان بهش باز میشه یه طرف که برای گناهکار باز نخواهد شد چنانچه رسول الله صلی الله علیه این آیه را اینجا تلاوت میکنه حتی یل جل و فی سم الخیاط اگر شطور تونست از سوراخ سوزان وارد میشه برای گناهکار و تبهکار باز میشه ولی باز نمیشه برای مؤمن باز میشه آسمانی پس از آسمان دیگر تا آسمان هفتم نزد اللهش میبرند الله میگوید این کیست این بوی خوش کیه از کی میاد این بوی خوش کی این بنده و ينادى با احسن اسماء الذي كان ينادى في الدنيا و بهترین نام صدادرده میشه فیاقول الله اكتب كتاب عبد افتخار اکتب كتاب کتب عبدی فی در پرونده بهشتیان و علیین و بزرگواران حل بزرگواری میاره این شرف و این لیاقت رو میاره درهای آسمان به روح اتباز بشه پرواز بکنه آسمانی و پس از آسمان دیگه و الله هم با عزت رياض را یاد کنه نرنزد فرشتگاه اکتب و کتب عبدی فی علیه حالا علبا مال قابل قیاسه با اون جاهل است تمکار سروتمند سروتمند با اون ثروتش ولی تبهکاره علم و عالم با اون مال و اون سروتمند قابل قیاسن نه والله این در آسمان برش باز شده و باز میشه ولی اون نه اون که مال حرام پرده تبهکاره از همونجا الله میگه روحشو پرت بکنید به درون قبرش پرت میشه از آسمان تو قبرش من منکر و نکیرم میان بر سرش و ازش میپرسن من رب بکن و ما دین و من, و من کتاب و میگه ها هن ها هن لا ادری و با چماغی بر سرش میزنه که تمامی خلق جز جن و انس صدای فریاد و آهش بشنه و درهای از جهنم به قبر اون تبهکار باز بشه الله دستور در میده درهای جهنم باز بشه و از باد آتشین جهنم وزیده بشه به قبر اون تبهکار و ظالم کجاست اون مالا اینجا به دردش بخوره که اون مؤمن متقی خیر. الله دستور میده در اون قبل درهایی از بهش باز بشه به قبرش و اون روح پرواز بکنه بر روی درختهای بهشتی وارد بهش بشه ارواح المؤمنین که الطیر یعلق من شجر الجنه بره پرواز بکنه و از اون میوای بهشتی بخوره و از اون آب بهشتی بیا شامه نعیم خوشیه سعادتمندیه که راه کسبش علم فقط نمال راه کسبش علمه ومهما افتض ابكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت ومهما افتض ابكار الغواني ابكار جمع بكر دختره بكر الزواج نكر غواني ازغنا مياد ان دختراي आवाज خون زيبا هلا خصن ان شيزا قفتم در سرزمین اسپانیا و اندلس مشهور بود اگر اون سروتمند دختران ای را برای خودش بگیری یا با زواج یا کنیزانی بخره فکم بکرین خلا خطاب میکنه به ما تو طالب علم فکم بکرن من الحکم افتداخته تو چقدر تونسی از درهای حکمت علمی بجویی کسب کنی پی ببری به اون های الهی در اون علومش چقدر تونیستی از اون درهای حکمت و علوم شرعی باز بکنیم و بفهمی و درد که تو رو بدی آیا براد مهمه یا؟ مهم نیست مهمه که بدونی الله جل و علا چی گفته در قرآن چه سخنی با تو گفته یا نه طرف خوشحال میشه اگر با دختر باکره ازدواج بکنه عروسی میگیره جشم میگیرن خانواده داماد خانواده عروس برای اون عروسی داماد با اون دختر باکره جشنی برپا میشه شادی برپا میشه ای طالب علم تو چی شادی به این که علم را میآموزی یا نه میدونه علمم شادی داره توفیقش پیدا کردن کسب علمم شادی داره باید براش جشن گرفت اگر تو قرآن قران حفظ بکنی اگر تو قرآن را بفهمی نه اینکه شادی بیا شیرینی پخش بکنی ریاکاری بکنی نه نه این بازی است این تفریحه این خودنماییه این جشت گرفتن به عنوان بحانه تشویق و تکریم و حفاظ و همون حافظانی که سی چل نفر از اون مدرسی و این مدرسه تکریم میشن به عنوان حافظ قرآن بیا یک ماه بعد دو ماه بعد امتحان حفظ ازشون بگیر بعد بیا جایزه حفظ تکریم قرآن بهشون بده طرف اومده آمار میده مدرسه دینی ما سی نفر حافظ قرآن شدن خب بفرمایید این سی نفر بیاد قرآن میاد. میگه از این آیه بخون اون آیه بخون بعد آخر تکریم هم میشه ساده ترین آیات تو نمیتونه طرف جواب بده تکریمم میشه بعدم آمار ما اینقدر حافظ دارید. خود نماییه این بازاریابیه این دل تاجر رو به دست آوردنه تو تو میخوای هدفت رسیدن به دل اون تاجره که با اون آمارت اون تاجره رو فریب بدی که فکر بکنه که تو خیلی کار بزرگی انجام دادی سی تا حافظ تحویل دادی سیتا کیش سی بودن تو شاهکار کردی که گفتم حفظ هم شاهکاری نمیخواد کار بزرگی نیست این مراسم ها این نمایش ها از باب تاسف میگم از باب تاسف میگم ابزاری شده به دست ملاها برای فریب دادن تاجار ملاهای عالم نما چه برای ساخت ساز مسجد چه برای ساخت ساز چه برای حزینه مدارس چه میگم مدارس دینی کلاس های حفظ یا هر چیزی دیگه تاجر حساب کتاب بلد نیست تاجر فقط گوش به حرف داره میده اون تاجر هم مسئوله یکم به خودش زحمت نمیده مسجد فلانجا ساخته مسجد چقدر شه؟ میگه یک میلیارد چند متر این مسجد صد متر خب متر چند میشه این صد متر که شده یک میلیارد بیا حساب کتاب کن چقدر هزینه میشه چقدر آهم میبره بیا از یک پیمونکار یک پیمونکاری بیار طرف نگاه نمی کنه فقط چون اعتقاد داره به الله. چون مورید آب و اجدادی داشته به اون ملا یا پدرش یا نمیدونم کسی از کسوکارش اعتقادی یا مرامی داشتن به اون ملا کیلوی همینطور بفرما خیر رو بردار این پول رو صدقه رو بردار بر اونجا مسجد بساز یا مدرسه بساز اون طرفی هم که اومده به عنوان شیخ و عالم که عالم نیست عالم نماز تاجر اونم تاجر سر تاجر داره کلاه میذاره مسجد 100 متری که میشه با دوی سی میلیون ساخت داره قالب میکنه با اون تاجر به یک میلیارد فکر میکنه زرنگی کرده والله این رب بکلب المرسات در کمین هر دوتا تون نشسته همون تاجر همین تاجر این تاجر به اسم دین این تاجر که دنبال شهرت و دنبال نمیدونم دل این اون به دست وردن و الى آخرالله الله میدونه بین خودش و خدا چی گذشته ولی که در مقابل مالت تو مسئولی. چهار تا چیز سآل میشه روز قیامت مالت کجا خرج کردی؟ مالت مسئولی؟ چرا میدی؟ به چی میدی؟ خرج کجا میگونی؟ نگم من دارم به خیر میدم مسجد مسجد میسازم مسجد کی میسازه؟ چطور میسازه؟ حساب کتابش بکن خیلی از تجار ما غافلن اینجا دارم از باب تذکر میگم چون علم سبب میشه که این آفته درمان بشه این درد و مصیبت درمان بشه این مص پول خیر خوردن صدقه خوردن زننگی نیست و بال گردنه الیسا یضرک الاختار و ما انت ربک قد عرفته الاختار گفتی تا اندسی و رسول الله صلى الله سلم سمح میره آتش تو کنش محمد ولی سیاد در رو کل اختار و شیعه فقرت نه شخصیت تو پای مال میکنه لگه مال میکنه و نه آبروتو میبره و نه حیثیت تو زیر سال میبره نه والله تندستی زلدت و خاری نیست الله روزی رو تقسیم کرده الا این که تو آدم تمبلی باشی دنبال رزق روزی نباشی بی کمر باشی کار نکنی بله این عیبه زن بچه تو فقیر رها بکنی کار نکنی این عیبه ولی این که تو علمت سبب بشه كتنگدس بشه هم مغم علمه هم مغم نجات مردم رو داشته بشه اگر فقيرا بشه ان عيب برتونيست اذا ما انت ربك قد عرفت خصاً وقتك الله رو بدوني والدينش رو بش نسي فماذا عنده لك من جميل اذا بفناء طاعته انخته فماذا عنده لك من جميل توزيح بيت قبلية سر سعادة خوشبختية چه؟ علم ما به الله جل وعلا شي علم قلبي بالصفاتش قلبي بانك يا الله جل وعلا خير خاه ماست سر سعادتي خوش باختي براي بار دارم ميام فماذا عنده لك من جميل شقد الله عز وجل خوبي حق داره كم خوبي ديدي از الله جل وعلا كم خوبي ديدي دي كالان فقرته بزرق مينين نعمت چشم و گوش و بینایی و دین و دیانت و عزت و آبرو و حیثیت کم گرفتی؟ درست ما قبل یه گفتیم اشاره کردیم بحث عزت انسان و سربلندیش در مقابل اصل و نسبش نامدار بودنش نه بینام شدنش این همه نعمته ولی انسان به چش نداره به چش میار میگه اون نعمت های الهی را در خودت از اون نعمت های زیبا نعمت های الله به چش میار و الله را بر خودت خیرخواه بشمار ببین سر خوشبختیت الله همچنان با تو تعامل میکنه که تو گمان بهش داری گمانت خوبه یا بده من اگر فقیر شدم اگر بدبخت شدم اگر مریض شدم الله جل و علا خیرخواه رو بر خودم ببینم یا شرخواه خودم یوسف علیه السلام خیرخواه الله رو میدیدا شرخواه وقد احسن بی اذا اخرجني من السجن چقدر الله در حق من خوب بود مرا زندان آزاد کرد یا من زندان انداخته شدم شدم به چه انداخته شدم الله مرا آزاد کرد يعني من لیاقت اون زندانه رو داشتم لیاقت اون ثارت رو داشتم ولی که الله مرا آزاد کرد الله را در حق خودت خوب ببینی و بر قسمت و تقدیرت راضی باشه این سعادت خوشبختیه فماذا عنده اندهوللت من جميل عدهبی بفناء اطاعتتی اخته این قضیه هم پیش نمیاد اللا اینکه تو فرمون برداره فرامین الهی بشی اون چیزی که الله حت خاصه را اجرا بکنی یعنی و علمی که آموختی بهش عمل بکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش مصیبت بیومد چیکار میکرد سر به سجده وینورد نماز میخوند تو چی فقط کمه که تریپون برداری تو مسجد بگی من بدبخ شدم من خار شدم من مریض شدم من فلان شدم فقط همین مونده همه جا اجسنالی میکنی هر مجلسی حالا گران شده حالا مرغ اینقدر شده حالا چی بخوریم حالا نمیدونم انگار که هیچ چی نیستو بخوری انگار که اصلا غذایی نیست که اصلا تو بخوری اصلا این چیه ناشکری ناسپاسی مصیبت هست ولی که مؤمن در مقابل مصیبت چیه الگوش رسول الله صلی الله علیه و سلام چیکار می‌کرد رسول الله صلی سلام رو به نماز میورد، رو به طاعت و عبادت می‌ورد تهجد می‌خوند به بذكر الله تطمئن القلوب دنیا را بر سرت خراب بکنن، تو قرآن رو داری به بذكر الله تطمئن القلوب قرآن انسان آرامش میده، باز هم سرت اختلاف داری مشکل داری چرا داد و بیداد میکنی آرامش تو حفظ کن بیا با قرآن بشین درمان قلبت دوای قلبت شفای قلبت درمان دواز شفا والله ما فی في الله جل وعلا می نیالی از همسرت می از فرزندت بیا رقیه شون بکن و خودت هم رقیه بکن با اون قرآن چون قرآن غایه به زندگی داد و بیداد ها بر و سر و صدا ها زیاده ناله ها و نعره ها زیاده تنها ناله نیست، نغره است. طرفدار نغره میکشه. از کفران نعمت و ناشکری، انگار خیری ندیده. ولی که علم به انسان شرف میده. میدونه که نغره ماره علاق خره. ان انکر الاصوات صوت له حمیق. نباید نغره بکشه. نباید ناله بکشه و داد و بیداد که در مقابل روزیش. چون رزاقیه الله جل وعالا. صحابه اومد الانگلای کرده نظر رسول الله صلوات همه چی گران شده. رسول الله صلی الله عليه وسلم آله رحمات میشن چی قال ان الله هو المسیر گفت بیت تو قیمتا این کون گفت منزل الله هو القابض وهو الباسط الله اس که سیمیره و بکسی میده و القابض اس که سیمیره و هو الباسط و بکسی میده الله جل و رزاق روزی دهنده است نباید انسان شکیوه بکنه در مقابل رزق روزیش رزق روزی که الله جل و علا تعیین میکنه زمانی که شکیوه و گلایه از رزق روزي شد در غیبت باز میشه، در تهمت باز میشه، در بدگویی باز میشه این رو متهم میکنی، اون رو متهم میکنی، این جلو روزیم رو گرفته، اون نمیدونم کار من رو خراب کرده، این فلان کرده آب رو روزی میکنی، بخاطر این که فکر میکنی داری حق خود دفاع میکنی ولی که حق دیگران رو داری پای مال میکنی فقابل بالقبولی لنسخی قولی فا این اعراضتا عنه فقد خسرتا فقابل بالقبول لنسخ قولي اي دوست اي رفيق ان نسيحت مره قبول كون فان اعرضت اقر كاردي مرة بر علم ترجيح داري فان فقط فقد خسرت خودت زيان كاردي خذت خسارات كاردي وإن راعيته قولا وفعلا اقر قبول بوكني اهميه بشبدي بين نسيحتك بترابوض اشتم بتوقف تام بقول عملت وفعلت بي عمليش بكني بشني سر حلقات علم بي كتاب بخوني دنبال علب وشي علم رترجح بدي برمال وتاجرت الاله وأم تاجرته ان كاسبيت بأ الله وشي وتاجرت الاله بربحته تنجس سود كاردي يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم إلى آخر تجاره. تجارته ب الله جل وعلا، إنت جاراته ب الله مرة نجات ميدا، نجاته ودار تجارته ب الله خصسان دار علمه دمبل علم بودن علم شرعي و سخنان الله جل وعلا بودان، سبحان الله بحمدك سبحان الله بحمدك صل الله على محمد وآل محمد